بسم الله الرحمن الرحیم ثالثا الهزل سيفبن عارض چه است؟ شوخی است. از عوارض اکتسابی یا سماوی؟ اکتسابی. بله. ساس الهزل ان يراد بالشيء ما لم يوضع له. میگه هزل این است که منظورش از چیز یا مراد میگیرد از چیز را که اون چیز براش وضع نشده آقا شما بیایید یه چیزی رو میگی یا مثل که معامله زدم یا طلاق دادم ولی منظورت چیزی دیگر است به عنوان مثال موقعی که میگی طلاق دادم این برای چی وضع شده؟ برای طلاق وز شده خود طرف بیاد از همین که طلاق دادم از همین چیز منظورش چیزی دیگه باش منظورش خب تلمه طلاق دادم برای چی چیزی وز شده برای طلاق وز شده برای چی وز شده تو میای چیزی رو اراده بکنی درستونی که این کلمه برا اون معنا و وزن نشده ها کلمه ای رو استفاده میکنی ولی منظور چیزی دیگه است به زبان صالح منظوره پس ال حزل ان یراد بشی مالا هو بالا حزل یهم الشوخی مراد تو بد چیزی معنایی که اون چیز برای اون معنا وضع والهازل يتكلم باختياره وهو عالم بمعناه من غير قصد لموجبه وهو يباشر العقود والتصرفات عن رضا واختيار ولكن لا يريد الحكم المترتب عليها وَلَا يَخْتَارُهُ وَلَا يَرْضَى بِوَقُوعِهِ دیقه داشته باشید میگه که حاضل شوخی کننده با اختیار خودش چکار میکند سخن میگوید یا با به اختیاری به اختیار خودش حرفو میزنه اجباری که درش نیست معنای اون حرفی رو که هم میزنه خودش آگاه هست ولی قصدش چیزی دیگه است قصدش این نیست که اون چیزی را که گفته است عملی بشه ها متوجه شدید پس پس میگه انسان حاضل عقود و تصرفات را از روی رضا و اختیار انجام میده اما نمی خواهد حکمی را که مترتب بر اون سخنان آقا سخنی رو میگه به عنوان مثال مثلا طلاق خب کسی گفت طلاق چی چیزی بر این میشه؟ اصلا هم جدا میشن دیگه مسائلی و یادش برش میشه میگه در شوخی طرف چیزی رو میگه ولی نمیخواد اون حکمی رو که بر اون سخنش مترتب میشه اجرا بشه اون حکم رو نمیخواد. و اختیارش نمیکنه و به واقع شدنشم هم راضی پس تا اینجا کار همه رو توضیح, توضیح داد شوخی رو. آقا شوخی اون چیزی رو میگن که طرف اونو میگه ولی مرادش چیزی دیگه. خلاصه سخن چیزی را میگوید که مرادش، خب حالا كي تا اين جاي كار روية حظل توضيح دار بحث ما روية اهلية وجوب و اهلية عدا نافي نشان؟ نا فالطرف عقل داره اهلية وجوب تا ايسان كي زنده هست نافي داره اهلية عدا هم زمان كي عقل داره نافيه؟ بس ميگه هو لا ينفي اهليه الوجوب ولا أهلية الأداء ولكنه يؤثر في بعض الاحكام بالنسبه للهازل لقد اشترحت ميگه حزل نفي نمكنت اهليه وجوب و اهليه اداء بعباره ديگر حزل لا اهليه وجوب را نفي میکند و لا اهليه نسبة مشيوفي كنا عند تأثير دارات. شو دارات؟ درباز يا أحكامات. ندر هم أي أحكامات. وخلاصة ذلك. بيجي خلاصة أنا أن التصرفات القولية التي تقترن بالهزلي ثلاثة وقسمين. ولكل قسم حكم يخصه. بيجي خلاصة تصرفات قولي. یا تصرفات قولی که مقترنه به شوخی هستن بر سه قسم تصرفات قولی که شخص میتونه در شوخی شوخی بکنه بر چند قسم سه قسم هر قسمی حکم خاص خودش را دارد فرق بیکند انسان در اخبارات شوخی بکنه در ارشاعت شوخی بکنه یا در اعتقادات شوخی بکنه فرق دارد به این خاطر میاد تصرفات قولی رو چکار میکند دستبندی میکنه تقسیم بندی میکنه و بعد از اون توضیح ده اول اخبارات آقا شخص میاد یک اقراری میکنه که من معامله ای زدم میاد اقرار میکنه که من نکاح شدم تلاق دادم خب دقت بفرمایید میگه که اولی نوع از تصرفات قولی اخبارات و هی الاقرارات همون به هستن؟ اقرارها که شخصش به شوخی میاد یه چیزی رو اقرار میکنه نکاحی کردم فلان کارو کردم فلان کارو کردن ها اقراری میکنه خلاصه میگه والحزل يبطلها مهما كان موضوع الاخباری هازل اقرارات رو باطل میکنه هر چه که موضوع اخبارش باشه موضوع اخبار و اقرارش هر چه باشه حضلونو چکار بیکنه؟ باطلش بیکنه یعنی اعتبار نداره لأن صحت الاقرار تقوم على صحت المخبر به زیرا صحیح بودن اقرار بر اساس صحیح بودن مخبر بهیست بر اساس صحیح بودن آن چیزی است که در موردش کار کرده است خبر داده است والهزل دَلِيلٌ ظاهر عَلَىٰ كَذْبِ ما اقربه میگه شوخی حزل دلیلی ظاهر است بر دروغ بودن آنچه که اقرار کرده است آقا آنچه که اقرار کرده است دروغ دیگه شوخی موغی که میکنه و شوخی یعنی که آقا اونطوری اون نبوده نه اگر همان طور که میبود و به شوخی هم می به همان شکل اون موقع دیگه شوخی حساب می شد. مثلا اگر شخص موتوری خریده حالا بیاد اینجا بگه من موتور خریدم. این میشه گفت شوخی؟ شوخی اونی هست که بر شه. شوخی اونی هست که چه هست ؟ پس اگر شخص آمد اقرار کرد به حذل اون اقرارش اعتبار نداره چرا اعتبار نداره؟ چ داره دروغ میگه؟ چون داره میکنه؟ حرفش دروغه بر بگه حاضل شوخی دلیلی ظاهر هست بر دروغ بودن آن که اقرار کرده است فلا يعتد با اقراره در نتیجه اقرارش اعتبار ندارد فمن اقر حاضلا ببع او نكاح او طلاق فلا ابرت بذلك اگر کسی اقرار کرد به شوخی ای را یا نکاحی را یا تلاقی را اعتباری ندارد. اومده گفته که من این ماشین رو خریدم. ها ماشینی تو دستش داره بهش میگه من این ماشین رو چکار کردم؟ به شوخی. پس این ماشین خریده شد؟ ولا يترتب على اقراره شيء و اینجا بر این اقرارش هیچ چیزی مترتب نمیشه هیچ چیزی تکون نمیخورد پس این در اقرارات هست شوخی در اقرارات حکم شده شد؟ بیان شد اما در اعتقادات بیاد طرف شوخی بکنه اینجا حرفش تأثیر دارد یا ندارد؟ اینجا صد درصد صد درصد بشوخي بيات خدار فوهش بده شوخي بي شوخي دار اعتقادات شوخي وهي على قوال الدالة على قيدة الانسان ولا والهزل لا يمنع اثارها ولهذا لو تكلم بكلمة الكفر هازلا صار مرتدا عن الاسلام لان التكلم بكلمة الكفر هازلا استخفاف بالإسلام والاستخفاف به كفر فصار الناطق بكلمة بكلمة الكفر مرتدًا بنفس الهزل وإن لم يقصد وإن لم يقصد حكمه قال تعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم يا ورسوله ذا ختزة هنا تستهزی لا تعتذیرو قد کفرتم خوب در اعتقادات میگه اعتقادات اون اقوالی هستن که دلالت بر عقیده انسان بیکنند و حضل مانع از اثر شوخی نمیشه مانع از اثرش نمیشه اگر به شوخی هم بگوید اون اثرش رو داره آقا اثرش را دارد به این جهت اگر کلمه کفری را از روی حضل و شوخی گفت کلمه کفری را از روی چی گفت؟ حضل و شوخی مرتد گردد از اسلام این باید توبه کند زیرا تکلم به کلمه کفر از روی شوخی هم که باشد سبک شمردن اسلام هست و سبک شمردن اسلام حساب نکردنش کفر هست پس در نتیجه کسی که کلمه کفر را بگوید مرتد میگردد با خود شوخی اگرچه کم اون فکر رو در نیتش با نفس شوخی الله تعالی بگه اگر تو از آنها بپرسی که مسخره میکردن نه استهزا میکردن اگر تو از سل بپرسی اصلا این مسخره کنندگان کفار که آقا شما چرا این مر... اینجوری میگید میگن که ما بازی میکردیم شوخی میکردیم ولی تو به اینا بگو که آیا به الله به رسول و به آیات خدا شوخی میکنید نه عذر نه شما کفر کرده اید خب این آیه مبارکه سوره توبه دلالت بر این میکند که شوخی در اعتقادات انشاات، ببینیم تأثیر شوخی را در انشاعت ها؟ معامل کردن نکاح شدن تلاق دادن ها؟ ببینیم در اینا چه تأثیری داره و معناه ایقاو الاسباب اللتی تترتبو علیها الاحکام و المقرره لها کلبعی والا اجارت و سائر الاغود و هی نوعان معناه انشاعات یعنی واقع کردن اسبابی که مترتب میشه بر اون احکامات شرعی که براشون مقرر شده مانند معامله اجاره نکاح طلاق رجعه و اقود دیگر وهي نوعان و وانشاءات خودش بر چند نوع <تصفيق> الاول لا يبطله الحسد نوع اول اونیکه حزل شوخی اونو باطل یعنی اگر به شوخی هم اونو بگی خلاص انجام گرفت حزل شوخی اونو باطل نمیکنه ما کن نکاح و طلاق و رجعه ما نه طلاق و نکاح و رجع آقا کسی به شوخی طلاق داد خلاص شوخی اینجا دیگه مانه از این طلاق نمیشه باطلش نمیکنه این طلاق چون پیغمبر گرامی اسلام فرمود که سه چیز هستن شوخی و جدیشون همون جدی حساب میشه طلاق و, و رجوع کسی که طلاق داده و بعدا رجوع کرده دیگه به شوخی نه نیست آقا رجوع کرد دیگه رجوع کرده ا امید تو جلسه نشسته میگه که قبول کردم ها مولا صاحب بش میگه که آقا اینو در مقابل این قبول کردی میگه بله قبول کردم بعد از ده دقیقه دیوان تمام می‌شه آقا نه من قبول نکردم این شوخی بود آخه مگه میشه واقعا نکاح به شوخی ها برضو شوخي نيس، تونكاهو تلاقو رجاء، فاسا بعد الأول لا يبطله الحزل، نوع الأول أنارو حزله، باتلنا ميقول أنت احتمال فسخ ليست تلاقو رجاء، الثاني ما يؤثر فيه الحزل، بالإبطال أو الفساد، نوع دوبوني هاس درش دارش تأثير بالصار. یعنی باطلش میکنه آه؟ یا فاسدش میکنه کلبه ای و معنی ماننده به حالا اگر طرف اومد مثلا به شوخی گفت آقا من اینو ازت خریدم آه؟ آیا اینجا شوخی تأثیر داشته یعنی دیگه خلاص خریده شد اینجا میگه در معاملات در اینایی که فسخ احتمال فسخ در روشون هست میگه حزل در اینا تأثیر داره حضل در اینا چه داره؟ تأثیر بله اما در طلاق و نکاح و دیگه اونجا حدیث داریم که آقا در اونا سه چیزن شوخی و جد یکی یکی یکی نه بله دو آنچه که حضل در اونا تأثیر داره به ابطال و فساد ماننده خرید و فروش و اجاره و سایر که که درشون چه خب پس این بحثی بود در مورد حضل اما رابعاً از صفح چهارمین آرزه از آوارز آسمانی که تأثیر میگذاره اون صفح خاصه بگن این اه؟ این اکتسابی صفح <تصفيق> عطه معتوه بودن اون چی بود آسمانی بود سماوی بود یعنی دست خودش شخص نبود، پوک بود خودش عقل نداشت اونی که عقل نداشت اون یک آرزهی بود که آسمانی بود ولی صفیه بودن آسمانی نیست خودش میری کارای دیوانگی انجام بیده شکست شکاس بیخوره موالی فلان میکنه این بیش میگن انسان صفیح خب این صفح بودن. ببینیم تأثیرش چی هست و چی نیست خودش توزیم ده شمارش هست از یک صفحو في اللغة ابتدا صفحو در لغت بگه الخفه یعنی صحبوکی و فل الاستلاح عبارتون عن التصرف فلمال. المال علا خلاف شرع شرعی و العقل ما اقیام العقل در استلاب صفیح یا مصفح چی میگن؟ میگه تصرف در مال برخلاف مقتضای شرع و عقل چیزی که شرع اونو اختضا کرده چیزی که عقل میگه برخلافش میاد که؟ در مالش تصرف میکنه ما تو نبی این کارا رو میترد اینا آقا عقل داره در این, این که عقل داره کارای داره. گنوکی پوکی انجام میده کارای سبک سرانه انجام میده اعمالش رو تباه میکنه پس تصرف در اعمال برخلاف مقتضای سروع عقل با وجود عقل با وجود چی؟ عقل و عدد صفهو من الوارز المقتصبه لعنه صفیح یعقل به اختیاری و رضاح، علا خلاف مقتصب العقل میگه شمارده شده از صفه از عوارز اکتسابی چرا؟ میگه زیرا صفیح با اختیار و رضای خودش برخلاف خلاف عقل داری میکنه؟ کار میکنه پس اینو جزء عوارز اکتسابی حساب کردم میگه به خاطری که طرف عقل داره، ولی داره کارای غیر غیرعقلانی میکنه، کارای بر خلاف مختصر عقل میکنه. و هو لا ینافی الاهلیت میگه صفح، یا صفیهودان نافی اهلیت نمیکنه. اهلیت طرف داره که عقل داره نه، فصفیه کامل الاهلیت. مخاطباً بجميع التكليفات إلا أن السفه يؤثر في بعض الأحكام. 28 بجسافه أهلية رو نافينام يكونات إن صانس فيه أهليةش كاملة. بتمام التكليفات الشرع مخاطب. تمام رأي. تمام تمام التكليفات الشرع موجه بأوهاصان. باید انجامشون بریم ولی بیگه که صفح در بعضی از احکامات چی داره؟ تأثیر داره در بعضی از احکامات شرعی چی داره؟ حالا ببینیم خودش میگه چه جای تأثیر داره؟ بیگه و یظهرو هاده في فی من ان انصبیه اذا بلغ سفیل یکی از اون تأثیراتش اینه که اگر بچه بالغ شد و سفیه بود مالک شد و چی شد با سفاهت مالک شد آقا مالک شد ولی کارها چی انجام میداد سفیهانه انجام میداد ارسی رو برده مثلا از پدرش حالا که بالغ شده دیدید که آقا بری برای حسنا یک زن زبیر بزرگی رو بیده در مقابل بید یک سی دی مثلا قدیمه ها در مقابل یه زبطی مثلا منطقه خودمون جدی میگم در مقابل دوچرخه در مقابل مثلا همه چیز میدادن قدیمه الان مثلا بیاد یه چیز ارزشمند رو در مقابل یه پرایدی مثلا میده تو شهر موقعیت خوبی زمین داره بیاد که آقا طرف سوار پرایدی میشه هشتادو مثلا پنجیو بگرده خب خلاصه با سفاحت به بلوه میرسه میگه اثرش اینجا دیگه ظاهر میشه مال از این بچه مملو میشه مال ازش میشه بله و فی الحجری علالبالغ العاقلی بسبب صفح پس اینجا اگر بچه اومد بس سفیه سفیهانه بالغ شد بالغ بود و کار سفیهانه انجام میداد مالو از دستش میگیرد آقا مگه در قران حکم شده که شما اگر عقل از اینا مشاهده کردید مالو بشون بدید اگر مشاهده نکردید بشون در مورد یتیم میگه خب بقیه هم میگیرند <تصفيق> یا مثلا اثر دیگهش زبانی طرف بالغ عاقله ولی کارای سفیهانه انجام میده این هم اینجا تاثیر داره میان حجر حجرش میکنن یعنی ممنوع و تصرفش میکنن قاضی بیاد میگه که این آقا دیگه اجازه خرید و فروش نداره ممنوع و تصرف میشه از اموال خودش پس صفح تأثیر داشت اهلیت و میکرد. نمیکن نه اهلیت ادار و نه اهلیت یعنی هم حقوقی برایش شبوه هست و هم بر علیه شواجباتی هست این رو موقع اهلیت که نفی نمیشه. ولی در این حال در بعضی از احکامات که داره این سفید بودن تأثیر داره اگر بچه از تو بالغ شد مال بش داده میشه اگر بالغ بود و عاقل بود بازم حجر بیشه ممنون تصرف بیشه خب ساعت چند زن Zengi sayıştığa? Ufari. Çi? Ufari. Ufari. Ne? Ne? da zengi mi? Sabah, abicam şambe ya, sabah şeçli işte. Ne? Şambe ya